فصل 17 باید تلاش فراوانی به خرج میداد تا به عهد خود که مردن در پایان بارندگی بود وفا وفاکند امواج روشنبینی که در دوران بارندگی به ندرت به سراغش میآمد پس از ماه اوت مرتب تکرار میشد موقعی که باد خشک و گرمی شروع به وزیدن کرد و بوته‌های گل رز را خشکاند و کپه های گلولای به سنگ تبدیل شدند و در نهایت به صورت گرد و خاک سوزانی در آمدند که روی پشت بام های شیروانی کوبه خانه های را پوشاند و درخت های بادام را برای همیشه در خود مدفون کرد اورسولا فهمید که بیش از سه سال مانند یک اسباب بازی آلت دست بچه ها بوده و از حسرت شروع به گریه کرد رنگ های روی صورتش را شست نوارهای رنگارنگ را کند و دور ریخت مارمولک های خشکیده و لاشه های ها و تسبیح ها و منجوخ ها و گردنبند های کهنه عرب ها را که بچه ها از او آویزان کرده بودند از سر و صورت و لباس هایش جدا کرد بعد برای اولین بار پس از مرگ آمارانتا بی اینکه کسی کمکش کند از روی تختخواب بلند شد تا دوباره به احضای خانوادهش بپیوندد در حین حرکت، روحیه شکست ناپذیری داشت که سرچشمه آن درون قلبش بود و او را در تاریکی نابینایی راهنمایی میکرد. آنهایی که او را افتان و خیزان می دیدند، یا ندانسته به بالهای این فرشته پیر برخورد می کردند، فکر می کردند که ضعف او از پیری ناشی می شود. همچنان، با سرری برافراشته به حرکت خود ادامه میداد و چونین وانمود میکرد که دچار ناراحتی جسمانی است. آنها هنوز هم خبر نداشتند که او کور شده است. لازم نبود به چشم خود ببیند تا تشخیص بدهد که گلهایی که از زمان بازسازی خانهشان در دهها سال پیش برای نخستین بار کاشته بودند بر اثر چند سال بارندگی و به دنبال هفاری های آریون و سگندو نابود شده است دیوارهای خانه و کف سیمانی اتاقها ترک برداشته بود مبل‌ها فرسوده و رنگ پارچه های رفته بود درها از لولاها درآمده بودند و اعضای خانواده خسته و ناامید شده بودند درست همان چیزی که در دوران او بیمعنی بود همانطور که با حس قریزی خود راهش را از مقابل اتاقهای خواب و سرسرا ادامه میداد. صدای جویده شدن های چوبی توسط ها یا صدای جویده شدن پارچه‌ها توسط بیت‌ها و صدای مورچه‌های درشت قرمز را که توانسته بودند از بلای باران و سیلاب جان سالم به در ببرند می‌شنید که پیهای خانه را می‌جویدند. روزی چمدان خود را باز کرد و مجبور شد سانتا سوفیا دلا پیاداد را صدا بزند تا بیاید سوسک های حمام را که به چمدانش نفوذ کرده بودند بیرون بریزد گفت هیچکس نمیتونه تو این و زندگی کنه اگه اینجوری به زندگیمون ادامه بدیم، این شره نابودمون میکنن از آن زمان به بعد یک لحظه هم استراحت نکرد پیش از طلوع آفتاب بیدار میشد و از هر کسی که دم دستش بود برای انجام کارها کمک می گرفت، حتی از بچه ها چند تکه لباس را که هنوز هم قابل استفاده بودند جلوی آفتاب پهن کرد و با استفاده از هشر قوی به جنگ سوزک رفت خرابی را که موریانه‌ها به بار آورده بودند ترمیم کرد و با پاشیدن پودر آهک روی لانه مورچه ها آنها را از بین برد تب و تابش برای باز خانه آخر سر او رو متوجه اتاقهای خواب کرد. دستور داد خاک ها و تارهای انکبوت را که در گوش و کنار اتاقها انباشته شده بود جمع کنند. اتاقی که زمانی خوز کادیو و در آن برای یافتن سنگ فراسفه عمرش را گذاشته بود. همچنین کارگاه زرگری را که مدتی پیش سربازان آن را به هم ریخته بودند مرتب کرد. در آخر، کلید اتاق ملکیادس را خواست تا ببیند آنجا در چه وضعی است اما سانتو سوفیا دل پیداد بنا پسرش خواست پسرش خوزارکادیو سگوندو سعی میکرد مانع اقدام اورسولا شود ارسلا تا نابودی تمام حشرات خانه انعطاف نشان نمیداد و استثنایی قائل نبود بالاخره پس از سه روز تلاش و پافشاری موفق شد وادارشان کند در اتاق ملکیادس را باز کنند چنان بوی تعفنی به مشامش رسید که کم منده بود نفسش بند بیاید و نقش زمین شود به چارچوب در چسبید اما دو ثانیه بیشتر طول نکشید که یادش آمد سالها پیش هفتاد و دو دختر دانشجو یک هفته مهمان آنها بودند و پس از رفتنشان لگنهایشان را در این اتاق گذاشته بودند همینطور شبی بارانی را به خاطر آورد که هنگ از سربازان برای پیدا کردن خوز آرکادیو سگوندو سگندو همه جای خانه را گشته بودند و نتوانسته بودند او را پیدا کنند. انگار همه چیز را با چشمانش می دید. گفت خدا به دادمون برسه. اون همه برای تربیت تو زحمت نکشیدیم که کارت به جای بکشی که مثل خوک زندگی کنی. خوزار کادیو سگندو هنوز مشغول خواندن دست مرکیادس ملکیادس بود. تنها چیزی که از میان موهای بلند و در همتنیده سر و رویش می دید، دندانهای پوشید از لعاب سبز رنگ و چشمان باز بی حرکت او بود. با شنیدن صدای ارسلا سرش را به طرف او برگرداند. سعی کرد لبخندی بزند ولی بی اختیار یکی از تکی کلام‌های ارسلا به یادش آمد، و با صدای آهسته آن را زمزمه کرد چه <تصفيق> انتظاری داشتی؟ زمونه میگذره ارسلا هم دنبالی حرف او را گرفت و گفت خب همینطور هم هست اما نه اونقدر سری که تو میگی او وقتی جمله خود را شنید متوجه شد همون جوابی را به خوزارکادی و سگندو داده است که زمانی سرهنگ آرلیان و باندیا وقتی به اعدام محکوم شده بود در سلول به خود او گفته بود اطمینان پیدا کرد که زمانه به جای گذشتن دایره وار دور میزند. و از این فکر به خود لرزید اما باز هم تسلیم نشد خوزارکادیو سگندو را مانند پسر بچهی سرزنش کرد و از او خواست که حمام کند و موهای سر و صورتش را اصلاح کند و خودش را به شکل آدمیزاد درآورد. و در تعمیرات خانه کمکش کند. کادیو سگندو از فکر اینکه باید گوشه امن و بی سر و صدای خود را ترک کند، بدنش به رأشه افتاد. فریاد کشید و گفت که هیچ قدرتی نمی او را مجبور به ترک این اتاق کند، چون دیگر مایل نیست آن قطار لعنتی را به آن دویست واگن پر از اجساد قربانیان ببیند که هر غروب از ماکندو به طرف دریا حرکت می کند. فریاد زد، سه زار هش نفر همه اونایی که تو ایسکا بودن اورسولا فهمید که خوز ارکادی و سگندو در دنیایی به مراتب نفوز و تاریکتر از دنیای خود او گرفتار است در دنیای دست نیافتنی و پر از انزوا درست شبیه همان دنیای خوز ارکادی و او را به حال خود رها کرد اما دستور داد قفل در را باز نگه دارند و به طور مرتب هر روز اتاق را تمیز کنند. تمام لگنها را جز یکی دور بریزند. سر صورتش را اصلاح کنند و او را حمام ببرند و تمیز و مرتب نگهش دارند. درست مثل جدش در دوره که زیر درخت بلوت بود. فرناندا جنبجوش اورسولا را به نوعی شدت گرفتن جنون او تلقی کرد. طوری که نمی توانست جلوی عصبانیت خود را بگیرد خوزار کادیوی چهار روم از روم پیغام فرستاد که در نظر دارد پیش از بستن هر نوع قرارداد نهایی به ماکندو برگردد این پیغام چنان فرنانده را بر سر زوق آورد که همه چیز را فراموش کرد و هر روز از صبح زود تا غروب در خانه می پلکید و همه جا را تمیز و مرتب می کرد و روزی چهار بار به گلها آب می داد. نمیخواست وقتی پسرش می‌آید، از دیدن به هم ریختگی و وضع ناب سامان خانه معیوس شود. با همین انگیزه به کارهایش سرعت داد و به نام نگاری با پزشکان نامرعی ادامه داد. گلدانهای سوسن و سرخص و بگونیا را روی ایوان چید و نگذاشت که اورسولا بفهمد گلدانهای قبلی را آرلیون و سگندو در حال عصبانیت شکسته و خرد کرده. سرویس نقره خود را فروخت و به آن ظروف سرامیکی، کاسه های فلزی، قاشق‌های های سوبخوری و رومیزی های آلپاکایی خرید. به این ترتیب، قفصه را که تا آن زمان به ظروف نقره و چینی آلات هندی و کریستال بوهمیایی عادت کرده بودند، با فقر و نداری آشنا کرد. در این میان، ارسولا راه خودش را می‌رفت و هر جا که می رسید با صدای بلند می‌گفت. دراب و پنجره ها را باز بذارین گوشت گاو و ماهی بپزین سعی کنین بزرگترین لاک پشت بخرین به غریب اجازه بدین به حیات بیان و تشکاشونو هاشونو هر که خواستن په کنن و پای بودتایی روز بشاشن و هر چند دفعه که دلشون خواست غذا بخورن و آروغ بزنن و با چکمه هاشون همه جا رو کسیف کنن. اجازه بدین هر بلایی که خواستن سرمون بیارن. تنها راه خلاصی از فلاکت و ویرانی همینه. اما این تصور او بیهوده بود. اورسلا خیلی پیر شده بود و زیادی زنده مانده بود. سعی میکرد با معجزه آب های حیوانات کوچک زندگی را از سر بگیرد، اما هیچ کدام از بازماندگان او این توانایی را به ارث نبرده بودند، طوری که در بزرگ خانه برخلاف نظر او به دستور فرناندا کماکان بسته ماند. آرلیان سگوندو هم که دوباره چمدانهایش را به خانه پترکوتس برده بود، فقط میتوانست کاری کند که خانواده‌اش از گرسنگی نمیرند، او و پترکوتس قاطر را به بختازمایی گذاشتند و توانستند چند حیوان دیگر بخرند و بختازمایی دیگری به راه بیندازند. برای این کار و سگندو به خانه های مردم می رفت و بلیط های بختازمایی با آنها می فروخت. هایی را که خودش با جوهرهای رنگا رنگ و ورقه های کوچک کاغذ هرچه جذابتر و قشنگتر و چشم درست می کرد. ولی خبر نداشت که اکثر خریداران بیتط ها را برای حق شناسی و خیلی های دیگر هم از روی دلسوزی میخرند. با این حال خریداران این شانس را هم داشتند که با پرداخت 20 سنتاو در صورت برنده شدن صاحب یک خوک شوند یا با پرداخت سی سنتاو ستاو ای را برنده شوند. در شبهای سهشنبه که زمان قرعه کشی بود حیات خانه پترکوتس از جمعیت پر میشد و چشم امید همه به دستهای کودکی بود که از درون کیسه برگه برنده را بیرون می آورد طولی نکشید که این کار به صورت نمایشگاه هفتگی در آمد. از اوایل غروب دکه های عغزی فروشی در گوشه و کنار حیات برپا می و بعضی از برنده های خوشقلب و دست و دلباز حیوانی را که برنده شده بودند قربانی می کردند. البته به این شرط که دیگران هم شراب و موسیقی را تدارک ببینند به این ترتیب آوریان سگندو به اینکه قصدی داشته باشد ناگهان پیبرد که دوباره به نواختن آکاردون کشیده شده و در مسابقات پرخوری شرکت می کند تکرار جشنهای کوچک شده پرخرج سابق این حسن را برای او داشت که بفهمد روحیه و مهارتش در ایاشی و میگساری تا چه حد کاهش یافت است در واقع او به کلی عوض شده بود وزن 120 کیلویش زمانی که با ماده فیل مسابقه پرخوری داده بود حالا به 78 کیلو رسیده بود صورت چاق و براغ لاک پشت مانندش حالا شبیه به صورت مارمولک ایگوانا شده بود دائم کسل و خسته بود از نظر پترکوتس او هرگز به خوبی حالا نبود و او را تا این حد دوست نداشته بود اگرچه ممکن بود عشق پترکوتس با ترهم توان باشد چرا که فقر و تنهایی روی هر دوی آنها تأثیر گذاشته بود تخت خواب مجلل سابق که شاهد عشق بازی های دیوانوار آنها بود حالا در اثر شکست شدن به شکل پناهگاهی ساده در آمده بود آینه های قدی روی دیوار را به حراج گذاشته بودند تا بتوانند حیوانات جدیدی برای بخت آزمایی بخرند. شبها تا دیر وقت می و با قیافه های معصومانه و مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ درآمد روزانهشان را حساب می‌کردند و پول‌های را می که روزی برایشان حکم پول خورد را داشت. آن هم توهی از هر گونه هرزگی برای اشبازی، و در اتاقی که از پردههای مخملی خالی شده بود چرا که آنها را به خرد قاطر داده بودند مشتی سکه را از روی بر برمی‌داشتند و روی کپی دیگر می‌گذاشتند دوباره پول خردها را به هم می‌زدند و باز شروع به شمارش می‌کردند مبلغی را برای مخارج فرناندا کنار می‌گذاشتند تا او را راضی نگه دارند مقداری روی کوپی دیگر می‌گذاشتند تا یک جفت کفش برای آمرانتا اورسولا بخرند. کپه دیگر برای سانتو سوفیا دلا پهداد که خیلی وقت بود برای خودش لباس نخریده بود. کپی دیگر برای تابوت اورسولا. کپی برای خرید قهوه که قیمتش هر سه ماه یک بار یک سنتا و گرانتر میشد یک کپه برای خرید شکر که روز به روز از میزان شیرینی آن کم می شد. کپهی برای خرید الوار که هنوز هم در اثر باران خیس بودند و یک کپه برای پرداختن بهای گوساله برنده ماه آوریل که پس از فروش بلیت های بختازمایی در آخرین لحظه متوجه شده بودند به سیاه زخ مبتلا شده با تنگ دستی دست به گریبان بودند بیشتر درآمدشان را برای مخارج فرناندا کنار گذاشتند، نه به خاطر ایمان یا احساس پشیمانی بلکه فقط به این خاطر که رفاه او را بر رفاه خودشان ترجیح می‌دادند. هردوی هر دوی آنها به اینکه خود بدانند فرناندا را دختر خودشان می‌دانستند. دختری که هرگز نداشتند در این از خودگذشتگیشان تا آنجا پیش رفتند که یک بار مجبور شدند سه شبان روز نان خالی بخورند تا فرناندا بتواند یک رومیزی هلندی برای خودش بخرد هرچقدر آن دو جان می کندند و با هزار مكافات خورده خورده پول در میآوردند و برای درآمد بیشتر طرحهای گوناگون میریختند اما فرشته شانس اقبالشان از فرط خستگی به خواب میق فرو رفته بود و پولی که در نهایت گیرشان میآمد فقط کفاف زندگی بخورنمیرشان را میداد. با تعجب از خودشان میپرسیدند در دنیا چه اتفاقی افتاده است؟ چرا حیواناتشان مانند حیوانات سالهای پیش دیگر به آن شکل زاد و ولد نمی کنند؟ چرا پولی که با هزار مكافات در میآورند به سرعت از چنگشان بیرون می رود؟ چرا در گذشته ها مردم به اینکه خم به ابرو بیاورند مبالغ کلانی را خرج عیاشی می کردند اما حالا پرداخت دوازده سنت و برای خرید بیت بختازاع شش مرغ به چشمشان زیاد میآید؟ در نهایت؟ آرلیانو سگوندو به اینکه چیزی به زبان بیاورد، به این نتیجه رسید که شیطان در هیچ جای دنیا خانه ندارد مگر در گوشه از قلب پترکوتس، همان جایی که در دوره باران حیوانات را از باروری انداخته و پول را کمیاب کرده است. او با این نیت چونان در عواطف و احساسات پترکوتس نفوذ کرد که در قلب او جز عشق چیز دیگری نیافت. در طی تلاش خود برای جلب عشق و محبت او زمانی متوجه شد که خودش هم سخت عاشق پترکوتس شده است. پترکوتس وقتی پی برد که عشق آرلیان و سگندو نسبت به او روز به روز بیشتر می شود بر شدت عشق خود افسود. به این ترتیب بود که در اوج فصل پاییز او یک بار دیگر به این باور خرافی دوران جوانیش رسید که فقر و نداری برده عشق هستند. در این زمان هر دوی آنها نگاههاشان به دوران عیاشی و خوشگذرانی جنون‌آمیز گذشته‌ها ثروت بی‌حد و حساب و مهمانی‌های پرزرگ و برق و عیاشی و عشق لجام گسیخته‌شان بود. آن روزها را خار می‌شمردند و خود را سرزنش و شماطت می‌کردند که به قیمت عمرشان تمام شده بود. به بهشت تنهایی دو نفرهشان رسیده بودند. که آن همه سال به سادگی آن را از دست داده بودند حالا سر میز غذاخوری همدیگر را بیشتر دوست داشتند تا در رخت خواب از این احساس چنان شاد و خندان شدند که حتی با وجود پیری و فرسودگی مانند دو طول سگ بازیگوش با هم بازی می کردند و از سر و کول و هم بالا می رفتند حرفه بخت هرگز گسترش پیدا نکرد در ابتدا آرلیانو سگندو هفتهی سه روز خودش را در اتاقی که دفتر دامداری قبلیش بود زندانی میکرد و مدام بلیط درست میکرد و آنها را شماره گذاری میکرد و با دقت و زرافت رویشان یک گاو قرمز یا یک خوک سبز و یا تعدادی مرغ و خروس آبی نقاشی میکرد. آن هم بر این اساس که کدام حیوان را به بختازمایی خواهد گذاشت. اسمی را برای بختازماییشان انتخاب کردند که ساخته بود. اورلیونو سگوندو با تقلید از حروف چاپی و با دقت نوشت: باخت خوش خوشاقبت الهی با هزار جان کندن هفته‌ای بیش از دو هزار بلیت را نقاشی می‌کرد. این کار او را خسته و فرسوده کرد تا اینکه به فکرش رسید تصاویر و اسم‌ها را به شکل مهری لاستیکی درآورد. با این حساب تنها کاری که باقی می‌ماند مهر کردن آنها روی کاغذهای رنگی بود در سالهای بعد به این فکر افتاد که معماهایی را جایگزین شماره روی ها کند تا آنهایی که معما را حدس میزنند در جایزه سهیم شوند اما این سیستم چنان پیچیده و در عین حال چنان برای عموم غیر قابل کشف و با سوءزن همراه شد که بعد از دومین مرحله آن را لغو کرد آرلیان سگوندو سرگرم حفظ اعتبار بخت بود و فرصت نمیکرد دختر و نوش را ببیند. فرناندا، آمارانتا اورسولا را در مدرسه کوچک و خصوصی که فقط شش نفر دختر را میپذیرفت ثبت نام کرد اما از ثبت نام سوم در مدرسه عمومی خودداری کرد. عقیده داشت تا حالا هم زیاد از حد به او اجازه داده از اتاقش بیرون بیاید آن روزها در مدارس فقط بچه هایی را میپذیرفتند که پدر و مادرشان کاتولیک باشند و در کلیسا ازدواج کرده باشند خود بچه ها هم باید قسل تعمید و نامگذاریشان در کلیسا انجام شده باشد اما وقتی آرلیانو سوم را به خانه آورده بودند روی تکه پارچه سفیدی که به سینش سنجاق شده بود نوشته بودند بچه سر راهی به همین دلیل او در خانه رها شد سانتا صوفیا دللاپیداد با مهر و محبت و اورسولا با افکار مقشوش و مبهم خود تربیتش کردند. به طوری که مطالبی را یاد می که مادر بزرگهایش در چهار دیواری اتاق به او می او پسر بچه زریف و لاغری بود که با کنچکاوی ها و سآل عجیب و غریبش بزرگترها را آسی میکرد ولی در عوض همچون دوران کودکی سرهنگ آرلیان بو گاهی نگاه جادویی داشت و گاهی هم با حاسپارتی مدام پرک میزد. وقتی آمران اورسولا در کودکستان بود او مشغول شکار کرم خاکی بود یا در باغچه های حیات حشرات را شکنجه میداد. روزی عغرب را در قوطی ریخته بود و میخواست در رختخواب اورسولا بگذارد اما فرناندو او را قافل گیر کرد و در اتاق زندانیش کرد او هم تنهاییش را با تماشای عکس های دایرت المعارف پر می کرد. ارسلا در یک بعد از ظهر وقتی می رفت تا با آبهاش به گلها آب بدهد بر تصادف او را دید. با وجود اینکه بارها و بارها با او بود اما او را نشناخت و پرسید تو کی هستی؟ و او هم جواب داد من آرلیان و هستم. ارسلا گفت درسته؟ حالا وقتش رسیده که زرگری یاد بگیری اورسولا یکی بار دیگر او را به پسر خودش اشتباهی گرفته بود باد گرمی که پس از پایان باران میوزید و به روشنی منجر می شد قطع شده بود اورسولا دیگر عقل و حوش خود را به دست نیاورد وقتی به اتاق خواب میرفت مادرش پترونیلا ایگواران را با همون دامن پشمی ناراحت کننده و آن ژاکت منجوق دوزی شده میدید. همون لباسی که در مهمانی های رسمی میپوشید. گاهی مادر بزرگ خود ترانکو ایلینا ماریا مینیاتا الا کوکه بواندیار را میدید که با باد بزنی دستی که از پر تاووس بود خودش را باد میزند و روی صندلی گهواری زیوار در رفتش نشسته است. جد بزرگ خود آرلیان و آرکادی و را میدید که یونیفورم قلابی گارد تشریفاتی نایب و سلطنه را داشت. گای وقتا پدرش آرلیان و ایگواران را میدید که دعایی را ابداع کرده که با خواندن آن انگلهای تن گاف ها خوش می و از شکم حیوان بیرون می ریدند. مادر کمرو و پسر امویش را که با دم خوک به دنیا آمده بود و شوهرش خوزکدی و بندی و پسران مرده خود را میدید که همگی روی صندلی چیده شده در اطراف اتاق نشستند طوری که انگار برای مراسم سوگواری جمع شدند نه ملاقات او با آنها حرف میزد و سعی میکرد صحبت های گوناگون آنها را به نحوی به هم رفت داد حرفهایی که مربوط به مکان ها و زمان های مختلفی بود اورسولا انقدر در رؤیای مالیخولیایش غرق بود که وقتی آمرانت اورسولا از مدرسه برمیگشت و آرلیانه سوم از ورق زدن و تماشای دایره المعارف خسته میشد او را در حال می‌دیدند که روی تخت خوابش نشسته و با خودش حرف می‌زند و نام اشخاصی را می‌برد که ده ها سال و حتی صد سال پیش مرده بودند ناگهان در یک لحظه و در بحرانی روحی با صدای بلند مانند فرمانده جنگ فریاد کشید. آتیش! وحشت و سردرگمی خانه را فرا گرفت و ترسیدند که نکند جای آتش گرفته باشد. اما او آتش گرفتن انبار اولوفهی را در چهار سالگی خود دیده بود. انقدر اتفاقات گذشته و حال را در هم می دید که نمی فهمیدند در مورد چیزی که میبیند حرف میزند یا در مورد چیزی که به خاطر می آورد کم کم لاغرتر شده بود و جسش کوچک و کوچکتر می شد گویی به تدریج می گندید و زنده زنده به شکل مومیایی در می آمد در ماه های آخر عمرش مانند آلبالوی خشکیده و ای شده بود که در لباس لباسخوابش گم می شد. بازوهایش که همواره در هوا تکانشان میداد، شبیه بازوهای میمونها شده بود. چندین روز بود که از جایش تکان نمی خورد. سانتوسوفیا دلّا مجبور میشد هر از گاهی تکانش بدهد تا مطمئن شود که هنوز زنده است. او را مانند کودکی بلند میکرد و روی زانوی خود می و چند قاشق شربت به گلویش میریخت. در این حالت به پیرزنی نوزاد شبیه بود. امرانت اورسلا و آریانای سوم گاهی او را از اتاق خوابش بیرون میآوردند. یک بار او را کف ایوان خواباندند تا ببینند آیا بزرگتر از مجسمه کودکی مسیح است یا نه. در یک بعد از ظهر هم در گنجی در انبار پنهانش کردند تا موشها او را بخورند. در روز یک شنبه نخل که فرناندا به کلیسا رفته بود، آن دو به اتاق خواب رفتند. یکی گردن و دیگری مچ پایش را چسبید و کشان کشان او را از اتاق بیرون آوردند امارانت ارسلا گفت ایونکی مامان بزرگ، اونقدر پیر شد که مرد اورسولا بهت زده شد و گفت من زنده امارانت ارسلا در حالی که سعی میکرد جلوی خندش را بگیرد به آرلیانه سوان گفت میبینی حتی نفسم نمیکشه اورسولا فریاد کشید من دارم حرف میزنم آریونه ثوام گفت حتی نمیتونه حرف بزنه حیوانکی قبل از اینکه چیزی بگه مثل یه جیر جیردیرک کچولو مرد ارسلا که انگار حقیقت را پذیرفته بود با صدای ای گفت خدایا پس مردن این شکلیه دو روز تمام دعا خاند. روز سشنبه دعایش به التماس از درگاه پروردگار تبدیل شد از خدا خواست جلوی مورچه های قرمز را بگیرد که خانه را از ریچه نکنند که چراغ زیر عکس رمدیوس را همواره روشن نگه دارد که هرگز به هیچ فردی از نسل بو ها اجازه ازدواج با هم خون خود را ندهد تا مبادا بچهشان با دم خوک به دنیا بیاید در این میان آریان سگوندو سگندو میخواست از بحران روحی و فکری ارسولا سو استفاده کند تا از زبان او محل دفن گنجینه را بیرون بکشد اما این بار هم تیر او به سنگ خورد ارسولا گفت وقتی سایرش بیاد خداوند ذهنش رو طوری روشم میکنه که با تونه انجای تله پیدا کنه سانتا صوفیا دلپیداد یقین داشت که ارسولا به زودی خواهد مرد چون در چند روز گذشته ماهیت طبیعت به هم خورده بود گلهای روز بوی علف هرزه را میدادند یک کیسه نخود روی زمین ریخت و نخودها روی زمین شکل ستاره دریایی را به خود گرفتند یک شب هم یک ردیف جسم نارنجی رنگ و دایره شکل را دید که در آسمان پرواز میکردند. صبح روز پنج شنبه مقدس او را مرده یافتند آخرین باری که در دوران شکوفایی شرکت موز از او خواسته بودند تا سن خود را محاسبه کند به این نتیجه رسیده بودند که بین 115 تا 122 سال سن دارد او را در تابوتی گذاشتند که از سبدی که آرلیانه سوم را در آن به خانه آورده بودند کمی بزرگتر بود تنها چند نفر از آشنایان در مراسم تدفین او شرکت کردند چرا که عده کمی از گذشته باقی مانده بودند که او را می اما دلیل دیگری هم وجود داشت در آن روز هوا به قدری گرم بود که پرندههای سرگردان به دیوارها میخوردند یا خود را از توری‌های جلوی پنجرهها عبور میدادند. و در اتاقهای خواب می‌افتادند و می مردند. مردم فکر کردند که دلیل مرگ پرنده ها باید تا باشد زنان خاندار از جارو کردن آن همه لاشه پرنده درمانده شده بودند مردها اجساد پرنده ها را با گاری ها در رودخانه می‌ریختند. در روز یک شنبه پاک پدر روحانی آنتونیو ایزابل که صد سال از عمرش می‌گذشت، از پشت تریبون خطابه رسما اعلام کرد که مرگومیر پرنده ها ناشی از وجود یهودی سرگردان در شهر است چرا که دیشب با چشمان خودش او را دیده پدر روحانی آنتونیو ایزابل او را برای مردم این گونه توصیف کرد که است که نیمی از آن بزغاله نر است و نیمی دیگر یک کافر ماده جانوری دوزخی که نفس آتشین او هوا را آلوده میکند و نگاهش باعث می شود تا زنان نوعروس به جای بچه هیولا به دنیا بیاورند. اده زیادی از مردم به حرفهای او اهمیت ندادند چرا که اهالی شهر به این نتیجه رسیده بودند که او بر اثر پیری خودش هم نمی داند چه و می میگوید اما در صبح روز چهارشنبه بعد زنی مردم شهر را وحشت زده بیدار کرد و گفت که رد پای یک جانور دو پا و سمدار را دیده است جای سمها چنان واضح بود که مردم شک نداشتند موجود وحشتناکی که پدر روحانی توصیفش کرده بود در ما است. تصمیم گرفتند در حیات خانهشان طلب بگذارند تا او را گرفتار کنند بالاخره موفق شدند او را به دام بیاندازند. دو هفته پس از مرگ ارسولا پتروکوتس و آرلیانو سگندو در اثر شنیدن صدای ناله بلند ای در آن نزدیکی وحشت زده از خواب پریدند وقتی خودشان را به محل رساندند ادهی از مردها را دیدند که در حال بیرون کشیدن حیوان از میان سیخهایی بودند که در گودالی پوشیده از برگ قرار داده بودند حیوان دست از ناله برداشته بود با وجود اینکه بزرگتر از یک گوساله نر نبود اما از یک گاوه نر تر بود مایع سبز رنگی از زخمهایش تراوش میکرد بدنش از کنه پر بود و پشم داشت های روی پوستش زبر و سفت شده بود برخلاف توصیفات پدر روحانی اندامهای او بیشتر شبیه یک فرشته بیمار بود تا یک انسان دستهایش سفت و چشمانش درشت افسرده بود زخم پینه بسته شانه هایش نشان می داد که بالهایی داشته که با تبر قهد شدند حیوان را از درخت بادامی در میدان مرکزی شهر آویزان کردند تا همه مردم تماشایش کنند آنقدر به همان حال ماند تا اینکه لاشش گندید مردم هم با برپا کردن جشنی همگانی لاشه را به درون شعله های آتش انداختند چون نمی توانستند آن حرامزاده را جزو حیوانات بدانند و لاشش را به رودخانه بیندازند و نه مثل انسانها دفنش کنند هرچه بود نتوانستند ثابت کنند که او باعث مرگ پرنده بوده یا نه اما آنچه که قطعی بود این بود که زنان نوعروس بچه هایی به شکل حیولا به دنیا نیاوردند و از شدت گرمای هوا هم کم نشد در پایان آن سال روکا مرد خدمتکارش آرخنیدا وقتی دیده بود که سه روزه است از اتاق او صدایی شنیده نمی شود زده از مقامات شهر خواست تا در اتاق را بشکنند وقتی در اتاق را شکستند او را دیدند که مانند یک میگو روی رخت خوابش مچاله شده سرش در اثر کرم کرمها تاز شده بود انگشت شستش همچنان در دهانش بود آریان سگوندو مسئولیت تطفین او را به گرفت. پس از آن سعی کرد دستی به سر و روی خانه او بکشد تا بتواند آن را بفروشد. اما خرابی به حدی پیش رفته بود که وقتی دیوارها را رنگ تازه زدند پوست پوسته شد و فرو ریخت. به اندازه کافی آهک و ساروج در اختیار نداشت تا شکاف دیوارها را بپوشاند و لانه مورچه ها را که از کف اتاخ تا دیرک های سقف نفوذ کرده بودند پر کند. بعد از آن باران سیلافخیز فاجعه بار، اوزاد چونان مخشوش بود که سستی و بیحالی مردم با افزایش فراموشی در تزاد بود. نسیانی که خاطرات مردم را با بیرحمی و به مرور از ذهن ها پاک می کرد، تا جایی که در جشن سالگرد پیماننامه نیرلاندیا، وقتی حیعتی از طرف رئیس جمهور به شهر ماکوندو آمد تا مدالی را که سرهنگ آرلیان و با بارها رد کرده بود به سینه یکی از بازماندگان او بزنند تمام بعد از ظهر را سرف جستجو کردند اما حتی یک نفر هم نبود تا به آنها بگوید در کجا میتوانند یکی از بازماندگان سرهنگ را پیدا کنند آرلیان سگوندو سگندو وسوسه شد که آن را بپذیرد با این گمان که مدال از طلای ناب ساخته شده اما پتروکوتس او را از این کار ناشایست که درست قبل از سخنرانی هیات و خواندن ها بود منصرف کرد در همین زمان بود که کلیها به ماکندو بازگشتند آن بازماندگان قبیله ملکیادس که علم و دانش او را به ارث برده بودند شهر را چنان شکست خورده و اهالی را چونان از غافله تمدن به دور دیدند که بار دیگر مجبور شدند مانند اجداد خود خانه به خانه راه بیفتند و قوه جاذبه شمش های آهنروبا را به نمایش بگذارند که انگار هنوز هم کشف جدید دانشمندان بابل بود. بار دیگر زربین های درشت و قدرت تمرکز نورشان را روی اجسام میانداختند و آنها را آتش می زدند. این شعبده بازی ها بدون تماشاچی نبود و مردم با اشتیاق و دهانی باز به تماشا می ایستادند برخی حتی پنجاه سنتا و پرداختند تا پیرزنی کولی را تماشا کنند که چگونه دندانهای مصنوعی خود را از دهانش در می آورد و بار دیگر در جای خود می گذارد تنها چیزی که از آن قطار طولانی باقی مانده بود لوکوموتیو زرد رنگ خورد شدهی بود که نه کسی را با خود می آورد، نه کسی را با خود می برد و به ندرت در ایستگاه های متروک و خلوت بین راه توقف می کرد قطاری که در آن دوران آقای براون واگن مجلل خود را که سقف شیشه ای داشت و سندلی های اصخفی آن نرم و راحت بود به انتهایش متصل می کرد و یا قطار ویژه حمل میوه با 120 واگن که یک بعد از ظهر تمام طول میکشید تا از جلوی ایستگاه عبور کند پس از گزارش مرگ عجیب پرندگان حیعت حقیقتیابی برای بررسی و کشف علت مرگومیر قیرادی آنها و قربانی شدن یهودی سرگردان از مرکز ایالت به مکندو آمدند و پدر روحانی آنتونیا ایزابل را در حالی دیدند که داشت با بچه ها بازی می کرد. با این اندیشه که گزارشی که او داده از روی توهم و خیال پردازی های پیری بوده از بچه ها جدایش کردند و به آسایشگاه بردند. کمی بعد پدر روحانی آگوست آنخل را به ماکوندو فرستادند او مبارز جنگ های بود و از نسل جدیدی بود که مردانی سخت گیر و بیپروا و مستبد در خود داشت. او خودش روزی چند بار ناقوس کلیسا را به صدا در می آورد تا روحیه و ایمان مردم دچار رخوت نشود. خانه به خانه می رفت و مردم را از خواب بیدار می کرد تا خودشان را به نیایش عمومی برسانند. هنوز از آمدنش یک سال نگذشته بود که او هم به فراموشی گرفتار شد. نسیانی که در اثر استنشاق هوای ماکوندو و به خاطر هوای داغ توان با گرد و خاک که هر چیزی را فرسوده و زمین گیر می کرد و به دلیل خوردن کوفته های نهار که تأثیر بد و رخوت در خواب بعد از ظهرش می گذاشت بود پس از مرگ اورسلا خانه یک بار دیگر در خطر ویرانی قرار گرفت حتی تلاش های فرناندا هم بیفایده بود مدتی بعد که تبدیل به بانوی بانشات و امروزی و آری از هر گونه پیش داوری ها شده بود سعی کرد با باز کردن درها و ها حیولای ویرانی را از خانه بیرون کند به بی باخچه ها رسیدگی کرد و مورچه های سرخ را که در روز روشن روی ایوان رژه رفتند از بین برد ولی بیهوده تلاش می کرد که روحیه مهمان نوازی فراموش شده خانه را از نو احیا کند شور و هیجان به کشیده شده او سدی نفوز ناپذیر در برابر روش های ست ارسلا قرار داده بود. بنابراین پس از فرو نشستن بادهای گرم نه تنها از باز کردن درها و پنجره ها خود داری کرد بلکه دستور داد پشت آنها را به شکل صلیب تخت کوب کنند تا خود را زنده به گور کند یعنی به دستوری که پدرش داده بود عمل کند. از سوی دیگر مکاتبه های پرهزینه با پزشکان نامرئی هم در نهایت به شکست انجامیده بود. پس از وقفه های بیشمار سرانجام در تاریخ و ساعتی تعین شده در اتاقش را بست و در حالی که رو به جنوب و سرش به طرف شمال بود روی تختخواب دراز کشید و ملافه سفیدی را روی خود انداخت. وقتی در ساعت یک نیم شب به هوش آمد دید که با دستمال آغشته به مایه زلال سرش را میپوشانند. هوا روشن شده بود و آفتاب از پنجره به درون می‌تابید. بخیه ناشیانه قوسی شکلی روی شکمش زده بودند که از بالای پاها شروع و تا جناق سینه ادامه داشت. هنوز دوران نقاحت را می‌گذراند که از طرف پزشکان نامرئی نامه‌ای دریافت کرد. آنها گفته بودند به مدت شش ساعت همه جای بدن او را معاینه کردند اما مرزی در بدنش وجود نداشته که شبیه مرزی باشد که او آنطور با وسواس برایشان شرح داده بود. در حقیقت او عادت داشت هر چیزی را با نام واقعیش نخواند. به همین دلیل باعث سردرگمی تازهی شده بود. چرا که تنها چیزی که پزشکان جراح در حین عمل تشخیص داده بودند، افتادگی رحم او بود که با استفاده از کاپوت هم میشد آن را درمان کرد فرناندو سرخورده شد و سعی کرد اطلاعات دقیق تری به دست بیاورد اما مکاتبه کننده های ناشناس دیگر به نامه های او جواب ندادند زیر سنگینی کلمه ناشنای کاپوت زنانه درمانده شد تصمیم گرفت شرم را کنار بگذارد و معنی آن را از پزشک فرانسوی شهر بپرسد اما فهمید که تنها پزشک ماکندو سه ماه پیش خود را از تیر سقف متبش حلقاویز کرده. جسد او را برخلاف خاست اهالی شهر در کنار یکی از رفقای سابقش که در ارتش زیر فرمان سرهنگ آرلیان و بو خدمت می کرد دفن کرده بودند. به این ترتیب چون امیدش از همه جا قطع شد به تنها پسرش خوزر کادیو چهار که در روم مشغول تحصیل بود پناه برد. او هم در جواب نامه مادرش چند عدد از سفارش های او را به همراه دستورالعمل آن برایش فرستاد. فرناندا برای اینکه کسی از مشکل جسمانیش مطلع نشود دستورالعمل را به خاطر سپرد و آن را به دست انداخت. اما این احتیاط کاری بیهوده بود چرا که بازماندگان خانه به زندگیشان ادامه می‌دادند و به او توجهی نداشتند. سانتا سوفیا و دلپیداد سنین پیری و تنهایی خود را می گذارند. او غذای مختصری را که آنها می‌خوردند خوردند می و تمام وقت خود را برای خوز آرکادی سگوندو سگندو صرف می کرد. امرانت اورسلا که نشان می‌داد بخشی از زیبایی رمدیوس خوشگله را به ارس برده اوقات خود را که در گذشته با آزار دادن ارسلا به هدر می رفت وقف درس خواندن می کرد. او به درسش اهمیت میداد و نشان میداد که دختر است. همان امیدی را در دل آورژیان سگوندو به وجود می آورد که قبلاً دختر دیگرش ممه در او برمی انگیخت. در نتیجه به او قول داد که برای ادامه تحصیل او را به بروکسل بفرستند. در زمان شکوفایی شرکت موز بین خانواده های مرفه رسم شده بود که فرزندان خود را برای تحصیل به یکی از کشورهای اروپایی بفرستند این موضوع باعث شد تا سگوندو سگندو برای تأمین هزینه تحصیل دخترش زمینهای کشاورزی را که از زمان فاجعه باران متروک مانده بود دوباره احیا کند آرلیان سگوندو گاهی به خانه سر میزد و آن هم تنها به خاطر دیدن اماران تورسولا. او با گذر زمان نسبت به فرناندا بیگانه شده بود آرانای سوم هم هرچه به سن بلوغ نزدیک تر میشد بیشتر در خودش فرو میرفت. آرییان سگوندو امیدوار بود که قلب و روح همسرش فرناندا در اثر پاگذاشتن به سن پیری نرمتر و ملایم شود و به پسر بچه روحیه بدهد تا در میان مردم سرش را بالا بگیرد و جذب زندگی شهری شود، طوری که کسی به اصل و نصب او کاری نداشته باشد اما، آرلیانای سوم کوچکترین علاقه ای به شناخت دنیای بیرون که از خیابان جلوی خانهشان شروع می شد، از خود بروز نمیداد. زمانی که اورسولا دستور داده بود در اتاق ملکیادس را باز کنند او دور بر اتاق میپلکید و گاهی از در نیمه باز به داخل اتاق سرکی میکشید. کسی نفهمید او و خوزارکادیو کادیو سگندو از چه زمانی به سوی هم کشیده شدند. آرلیان سگوندو هم خیلی دیر متوجه این نزدیکی شد. زمانی به رفاقت میان آنها پی برد که دید نواش از قتل عام در میدان جلوی ایستگاه راه آهن حرف میزند. روزی سر میز یکی از اعضای خانواده گفت از زمانی که شرکت موز ماکوندو را ترک کرده شهرشان رو به ویرانی است. ولی آرلیونه سوم مانند فردی بالغ و آگاه، گفته ای او را رد کرد. و خلاف آن را به زبان آورد او گفت که پیش از آمدن شرکت موز شهر ماکوندو شهری سعادتمند بوده و همه در رفاه و آسایش زندگی کردند و شهری رو به ترقی و تعالی بوده اما پس از آمدن شرکت موز به سمت فساد و هرج و مرج رفته و خون شهر توسط شرکت موز مکیده شده و دست آخر هم آنها باران را بهانه قرار دادند تا قولی را که به کارگران داده بودند زیر پا بگذارند. او چنان با آب و تاب و با دقت حرف میزد که به نظر فرناندا این گناه آمد که گفتگوی آنها نمایش بیهوده است که در آن کشیشی دارد با چند نفر پزشک بحث می کند. اما آرلیانای سوم بی افکار فرناندا با جزئیات شرط داد که چگونه ارتش با مسلسل جمعیت جلوی ایستگاه را به رگبار بسته و بیش از سه هزار نفر را به خاک و خون کشیده و چطور اجساد قربانیان را در قطاری با دویست واگن بار زده و همه را به دریا ریخته. فرناندا اعلامیه رسمی دولت را در این رابطه پذیرفته بود و قانع شده بود که هیچ اتفاقی در میدان جلوی ایستگاه راه آهن رخ نداده. با خود فکر کرد که این بچه هم مثل بقیه بو افکار آنرشیستیه سرهنگ آرلیانو و را به ارث برده است و با عصبانیت به او نهیب زد تا ساکت شود. آرلیانو سگندو در گفته های پسر بچه روایت برادر دوقلوی خود را باز شناخت. برخلاف اینکه همه خوز کادیو سگندو را دیوانه میدانستند او عاقل ترین آن خانه بود. سعی می کرد به آلیانای سوم خواندن و نوشتن یاد بدهد و به او آموخت که نوشته‌های روی پوست را بخواند و به مطالعه نوشته های ملکیادز ترغیبش کرد. ذهن او را از برداشت‌های شخصیش درباره شرکت موز و اینکه شرکت در آن زمان چه کارهایی در ماکوندو انجام می‌داده، پر کرد. طوری که سال‌ها بعد وقتی آرلیونه سوم بزرگ شد و به دنیای بیرون از خانه پا گذاشت، مطالبی درباره شرکت موز مطرح کرد. که با چیزهایی که مورخان در کتابهای درسی نوشته بودند تفاوتی فاهش داشت آن دو در اتاق مطروک ملکیادس که خالی از هوای خشک بیرون و توهی از گرد و خاک و گرما بود شبه پیر مردی را میدیدند که پشت به پنجره و رو به آنها مینشست و کلاهی که لبه های آن شبیه بالهای کلاخ سیاه بود بر سر داشت و از دنیایی برایشان حرف میزد. که پیش از تولدانها وجود داشت هر دو به طور همزمان فهمیدند که چطور در آن دنیا همیشه ماه مارس است و همه روزها همواره دوشنبه است بعد پی بردند که خوزارکادی کادیو سگندو برخلاف نظر خانواده دیوانه نیست و بالعکس تنها عضو خانواده است که بندازه کافی عاقل است و انقدر روشنبینی دارد تا به این حقیقت پی ببرد که زمان هم گاهی دچار فراموشی می شود و در نتیجه می تواند لحظه ای را تا ابد در یک اتاق باقی نگه دارد خوزارکادیو سگندو توانست حروف مرموز و رمزدار دست ها را طبقه بندی کند مطمئن بود که آنها به نهوی با حروف الفبایی که بین 47 تا و سه حرف دارد در رابطه است به طوری که وقتی از هم مجزا نوشته شوند شبیه خطوطی در هم و بر هم و خرچنگ غورباغه میشود، می شود اما در دست خط ماهرانه ملکیادس به تکه رخت شسته شده ای می میمانند که برای خشک شدن به روی تناب آویزان شدند. آریونای سوم به یاد آورد که شکلی شبیه به آن جدول را در دایرت المعارف انگلیسی دیده. آن را به اتاق آورد تا با جدول خزار کادیو سگانندو مقایسه کنند هر دو نوشته عین هم بودند. آریون سگوندو در دوره اراعه بختازمای جدیدش هر موقع از خواب بیدار می شد احساس می کرد که گرهی راه گلویش را بسته که مانع گریه می شود. پترکوتس هم این موضوع را چونین تعبیر کرد که این هم یکی دیگر از ناراحتی های است که در اثر اوضاع بد موجود به سراغش آمده. بیشتر از یک سال هر روز صبح اصل به گلوی او میمالید و آب تروپچه به خوردش میداد، اما وقتی گره در گلوی او به حدی بزرگ شد که نفس کشیدن را برایش سخت کرد، به دیدن پیلار ترنرا رفت، شاید او بتواند با داروی گیاهی مرضش را درمان کند. مادر بزرگ تسخیر ناپذیر او که سنش از صد سال هم فراتر رفته بود، چون به درمان از طریق دارو اعتقادی نداشت، موضوع را، به فال ورقهایش واگذاشت بر روی میز بیبی بی خشت را دید که گلوی سرباز پیک را با سوزنهای فولادی زخم کرده است او آن را اینگونه تعبیر کرد که فرناندا سعی دارد با فرو کردن سوزن به عکس شوهرش را دوباره به خانه وابسته کند اما در اثر ناشیگری سوزن را درست به گلوی عکس فرو کرده و به همین دلیل قدهی در جلوی او به وجود آمده آرلیان و سگندو یاد آورد که غیر از اکس های عروسیشان اکس دیگری ندارد و آن هم در آلبوم بزرگ خانوادگی است که در خانه سر جای خودش است زمانی که چشم فرناندا را دور دید مخفیانه به دنبال اکس رفت اما در گنجه به تعدادی کاپوت زنانه در قوتی اصلی خودش برخورد چون از آن حلقه های لاستیکی قرمز رنگ سر در نیاورد، به خیال اینکه به همان جادوی سیاه مربوط می شوند، آنها را توی جیبش گذاشت تا به پیلار ترنرا نشانشان بدهد او هم از آنها سر در نیاورد و برای از بین بردن تأثیر سهرامیزشان در حیات خانش آتشی درست کرد و آنها را در آتش سوزاند. همچنین برای باطل کردن اثر جادوی فرناندا به آرلیان سگوندو گفت که باید مرغ سیاه کرچی را خیس کند و آن را زنده زیر درخت بلوت دفن کند آرلیان سگوندو دستورالعمل را مو به مو اجرا کرد. پس از اینکه مرغ را دفن کرد و روی آن را با های خشک پوشاند احساس کرد راحتتر نفس میکشد وقتی فرناندا متوجه گم شدن کاپوتهایش شد آن را نوعی اقدام تلافی جویانه از سوی پزشکان نامرعی تلقی کرد و برای جلوگیری از تکرار آن جیبی برای لباس زیر خود دوخت و از آن پس کاپوت های را که پسرش از روم برایش می‌فرستاد داخل آن نگه می‌داشت. شش ماه پس از دفن مرق آریان سگندو در نیمه های شب بر اثر صرفه شدید از خواب پرید. احساس کرد در گلویش خرچنگی وجود دارد که مدام چنگ می زند و دارد خفهش می کند. آن وقت بود که فهمید حتی پس از سوزاندن آن لاستیک های قرمزرنگ سهرامیز و دفن کردن مرغ زنده تنها یک حقیقت وحشتناک وجود دارد و آن این است که دارد می میرد. اما این موضوع را برای هیچکس نگفت. از اینکه پیش از مرگش نتوانسته امرانت اورسولا را برای ادامه تحصیل به بروکسل بفرستد زجر میکشید. بنابراین به کارش سرعت داد. بختازمایی را به سه بار در هفته افزایش داد و از صبح زود دیده می شد که در قسمتهای پرتفتاده شهر پرسه میزند و سعی می کند بلیتهای را به فقرا بفروشد. فقط کسی می میزان دلهوره و نگرانی او را درک کند که بداند به زودی می میرد در خیابان فریاد میزد وقت بخت آزمایی خوش آقابت الهی فرصتو از دست ندین چون این شانس فقط هر صد سال یه بار سراغ آدم میاد با مشقت سعی می کرد خوش قیافه و بشاش و خوش صحبت جلوه کند اما فقط کافی بود به سر و صورت عرق کرده و رنگ پریدش نگاه کرد تا مرگ را به وضوح دید گاهی به جاهایی میرفت که بایر بودند تا کسی او را نبیند. مینشست، تا کمی نفس تازه کند و لحظه ای از چنگال های خرچنگی که از داخل گلویش را چنگ میزد خلاص شود. نیمه های شب در محله زنان فرانسوی پرسه میزد و سعی میکرد با امیدوار کردن آنها به برنده شدن در بخت آزمایی کمی شادشان کند. در حالی که زنان داشتند با نگاه کردن به عکس های دوران جوانیشان آه میکشیدند و گریه میکردند بلیت ها را بان نشان میداد و متقاعدشان میکرد که خوش شانس هستند میگفت این شما رو که می بینی تو چهار ماه گذشته از سبد بیرون نیومده اینو از دست ندین عمر آدم کوتاتر از اونه که فکرشو میکنین با این کارها چنان ارزش خود را پایین می آورد که نه تنها دیگر کسی برایش احترام قائل نبود بلکه مسخرش هم می کردند. در آخرین ماهای عمرش دیگر او را با لقب اشرافی دون آرلیون و سگندو صدا نمی کردند و با وقاحت تمام او را آقای خوش الهی می نامیدند. به تدویج صدایش زنگدار شد از نظم افتاد. صدای شبیه به زوزه سک اما با این وجود هنوز هم آن انگیزه و توان را داشت تا باعث شود که مردم با شور و اشتیاق در خانه پترکوتس برای تماشای مراسم قرعه کشی جمع شوند. در حالی که صدایش را از دست داده بود فهمید که درد گلو امانش را برید است. متوجه شد که با به بهراج گذاشتن خوک ها و بزها نمی تواند دخترش را به بروکسل بفرستد و باید دست به اقدامی بزرگتر بزند. و زمین های متروک و سیل زده را به حراج بگذارد تا کسانی که پول کافی دارند آنها را از نوع احیا و آباد کنند. این فکر او چنان عالی بود که حتی شهردار هم آن را پسندید و برای تبلیغ نفراتی را به کار گرفت و انجمن هایی برای فروش بلیط ها تشکیل داد. هر بلیط را صد پزو به فروش رساندند تمام بلیت ها در کمتر از یک هفته به فروش رفت. در شب حراج، جشن بزرگی ترتیب دادند که فقط قابل مقایسه با روزهای خوش گذشته دوران شرکت موز بود. آرلیان و سگندو آهنگ قدیمی و فراموش شده فرانسیسکوی مرد را با آکاردون نواخت، اما دیگر نمی توانست آواز بخواند. دو ماه بعد، امارانتا اورسولا به بروکسل رفت. آرلیانو سگوندو نه تنها همه درآمد خود را از حراج بزرگ در اختیار او گذاشت بلکه پولی را که در چند ماه گذشته پسنداز کرده بود به اضافه پولی که از فروش پیانو و کلافسن و دیگر خرتوپرت‌های گوشه و کنار خانه به دست آورده بود به او داد. محاسباتش نشان میداد همه آن پول ها هزینه تحصیل او را در بروکسل تأمین می کند. این به هایی بود که آنها می تا او با موفقیت به خانه بازگردد البته فرناندا با مسافرت او به بروکسل تا آخرین لحظه مخالفت کرد عقیده داشت که آنجا خیلی نزدیک به پاریس و بیبندوباری های حاکم بر آن شهر است اما وقتی پدر روحانی آگوست آنخل آدرس خوابگاهی را که طبق گفته او توسط خواهران راهبه اداره میشد شد در اختیارش گذاشت و آمارانت تا اورسولا هم قول داد که تا پایان تحصیلاتش در آنجا اقامت کند خیال فرناندو راحت شد پدر روحانی ترتیبی داد تا او زیر چتر حمایت گروهی از خواهران روحانی فرقه فرانسیسکن که عازم تولدو بودند قرار بگیرد آنها امیدوار بودند که در آنجا آدمهای قابل اطمینانی پیدا کنند تا او را همراهشون به بلژیک بفرستند به این ترتیب در مدت زمانی که مکاتبه با مراکز آموزشی در بروکسل ادامه داشت، آرلیان سگندو با کمک پترکوتس وسایل آمارانت اورسولا را جمع کرد و چمدانهای او را بست. در شبی که آنها مشغول بندی وسایل و لباسهای او بودند و آنها را در یکی از چمدانهای جهیزی فرناندا میگذاشتند گذاشتند، کارها چونان با نظم و ترتیب اجرا شد که او به راحتی می بفهمد کدام لباس را در هین سفر بر روی اقیانوس اطلس خواهد پوشید یا کدام کفش را موقع پیاده شدن در خاک اروپا به پا خواهد کرد و آنجا لباس آبی با دکمه های مسی را خواهد پوشید. همینطور یاد گرفت چگونه روی عرشه کشتی راه برود تا به اقیانوس پرت نشود. او هیچ وقت نباید از کنار خواهران راهبه دور میشد یا کابین خودش را ترک می کرد مگر برای غذا خوردن همچنین در تمام مدت زمانی که روی پهنه اقیانوس در حال سفر بودند به هیچ عنوان نباید به سوال هیچ کس اعم زن یا مرد جواب میداد. او شیشه کوچکی محتوی قطره دریاگرفتگی به همراه می برد و دفترچه کوچکی محتوی شش دعا به قلم پدر روحانی آگوست آنخل تا مواقع طوفانی شدن اقیانوس را بخاند. فرناندا کمربندی ای برایش دوخت تا پولهایش را در آن بگذارد و به او گوش زد کرد که حتی موقع خوابیدن هم آن را از کمر خود باز نکند. سعی کرد یکی از لگنهای طلایی را که با آب قلیا و الکل شسته و ضد عفونی کرده بود به او بدهد اما امارانت ارسولا آن را نخواست و گفت اگر همکلاسی هایش لگن را ببینند ممکن است مسخرش کنند. چند ماه بعد آرلیانو سگوندو در آخرین ساعت عمرش او را همانطور که در آخرین لحظات پیش از حرکت قطار دیده بود به خاطر میآورد که سعی می کرد شیشه کوپه خودش را در واگن درجه دو پایین بکشد تا بتواند آخرین حرفها و نصسیحتهایی او را بشنود به یاد میآورد که او در آن لحظه لباسی صورتی رنگ با نینتن زنانه که شلوارکی به لبه پایینی آن سنجاق شده بود و بندهای آن از روی شانه هایش گذشته بود به تن داشت کفش های ورنی پاشنه کوتاه را به پا کرده بود و یک جفت جوراب ساق بلند ساتن که با کش در بالای زانوهایش مهار شده بود تا پایین نیفتد بدن لاغر و قلمی و موهای لخت و بلند و چشمان شاداب و پرنشات او به اورسولا در همون سن و سال شباهت داشت نحوه خداحافظ گفتنش که تیان گریه نکرد و در این حال لبخندی هم نزد نشان داد که دارای همون قوت نفس و خصوصیات اخلاقی اورسولا است آریان سکوندو در حالی که بازوی فرناندو را گرفته بود تا مراقب باشد که پایش به چیزی گیر نکند و زمین نخورد همزمان با حرکت آرام قطار روی سنگ فرش ایستگاه حرکت کرد. او در آن حالت این امکان را پیدا نکرد تا دستی برای دخترش تکان بدهد که از پشت شیشه کوپه با نک انگشت خود به سوی او بوسهی فرستاد. قطار سرعت گرفت و دور شد. زوج پیر در زیر تابش سوزان و آفتاب ایستادند و به قطاری خیره شدند که در افق دور دست کوچک و کوچکتر و هم رنگ ریل های سیاه رنگ می شد. برای اولین بار پس از جشن عروسیشان بازو در بازوی یکدیگر انداخته بودند و غرق در افکار دور و دراز خود به طرف خانهشان برمیگشتند. در روز نهم ماه اوت پیش از آنکه اولین نامه از بروکسل به دست آنها برسد، کادیو سگوندو و آرلیانوی سوم در اتاق ملکیاده سرگرم گفتگو بودند. خوز آرکادیو سگندو بی این که منظور خاصی داشته باشد یک مرتبه با لحن مبهمی به آرلیانه سوون گفت همیشه یادت بمونه که بیشتر از سه هزار نفر بودن و اونا را توی دریا ریختن و به دنبال حرفش روی دست نوشته های ملکدس افتاد و در حالی که هنوز چشمانش باز بود مرد درست در همان لحظه برادر دو آرلیون آرلیان سگندو پس از مدتها رنج و عذاب از خرچنگی که گلویش را می دارید روی تخت خواب خود آرام گرفت. او یک هفته پیش در حالی به خانه برگشته بود که دیگر صدای از گلویش بیرون نمی آمد و به سختی نفس می کشید و جز پوست و استخوان از او چیزی باقی نمانده بود. چمدان سرگردان و آکاردان هر جاییش را هم با خود آورده بود تا طبق قولی که داده بود در کنار همسرش بمیرد پترکوتس او را در جمع کردن وسایل و بستن چمدان‌هایش کمک کرد و بی این که قطره اشک بریزد با او خداحافظی کرد اما فراموش کرد چکمه را به او بدهد که وسیعت کرده بود در تابوت به پاهایش کنند وقتی پترکوتس خبر مرگ را شنید لباس سیاه بتن کرد، چکمه ها را لای روزنامه پیچید و زیر بغل گرفت و به طرف خانه بویندیا ها رفت. از فرناندا اجازه خواست جسد آرلیانو سگوندو را ببیند اما فرناندا به او اجازه نداد حتی پایش را در خانه بگذارد. پترکوتس با لحن التماسامیزی گفت خودت تو جایی من بزار. ببین چه دوستش داشتم که این همه خفت و تحمل کردم فرناندا گفت زنایی مثل تو شایسته هر نوع اقارتی هستن سب کن تا یکی دیگه از فاسقات بمیره و چکمه رو پای اون کن سانتا صوفیا دللاپیداد طبق قولی که به پسرش خوز کادیو داده بود پیش از اینکه او را در تابوت بگذارند گلویش را با کار داشت پس خانه برید تا مطمئن شود که او را زنده در گور نمیگذارند جسد هر دو را در تابوت های یک شکل گذاشتند. یک بار دیگر و این بار در مرگ شبیه هم بودند. درست همانطور که در کودکی به هم شباهت داشتند. دوستان میگسار قدیمی آرلیان سگوندو حلقه گلی را که با روبانی ارغوانی رنگ تزیین شده بود روی تابوت او گذاشتند روی روبان نوشته شده بود گاوا ها از هم جدا شوید که زندگی خیلی کوتاه است فرناندو از دیدن این جمله چنان دلخور شد که حلقه گل را از روی تابوت برداشت و به توده زباله ها پرتاب کرد در آن اوزا به هم ریخته و در آن ها، رفقای مست او که تابوت‌ها را از خانه بیرون می‌آوردند به دلیل شباهت تابوت‌ها آنها را با هم اشتباه گرفتند و هر یک را در گور دیگری دفن کردند